دوستان خوبم آیا تا به حال جنگ دو نیروی متضاد رو درون خودتون حس کردین؟ طبیعت گناه آلود و طبیعت جدید که علیه همدیگه مبارزه میکنن. به دانشکدی کوچکه کتاب مقدس خوش اومدید. ما این جنگ رو درون خودمون حس میکنیم چون حقیقته. پولس رسول میگه که روح میتونه بر جسم غلبه کنه. تموم اینها بستگی به این داره که ما درون باغچه زندگیمون چی میکاریم. ما اطمینان داریم که این درس ها هر روزه به شما کمک بکنه. نه فقط به اینکه چه چیزی توی باغچه زندگیتون بکارید، بلکه بدونید چگونه از چیزهایی که کاشتید نگهداری کنید. اجازه بدین، حالا به دقت گوش بدیم و ببینیم که خدا میخواد ما چه چیزی رو از کلامش شیاد بگیریم. این شما و این درس امروز معلممون. به کلاس دیگری از دانشکده کتاب مقدس خوش آمدید ما امروز بررسی رساله غلاطیان رو تمام می‌کنیم. پولس رساله غلاطیان رو با مقایسه کارهای جسم و ثمرات روح القدس تمام میکنه. بیاییم به این مقایسه الهام گرفته پولس گوش بدیم. مقایسه بین دو چیز که در درون ما کار می‌کنند یا به عبارتی در جنگ هستند. اعمال طبیعت نفسانی آشکارند. زنا، ناپاکی، هرزگی، بت‌پرستی، افسونگری، دشمنی، ستیزجویی رشک، خشم، خودخواهی، اختلافات، دستبندی، حسادت، مستی، عیاشی و امثال اینها. اکنون مانند گذشته به شما میگویم کسانی که این چنین اعمال را بجا آورند در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت. اما ثمراتی که روح القدس به بار میاره، محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خشتنداری است که هیچ قانونی که بر خلاف چنین کارها باشد وجود ندارد. ضمن ادامه بررسی نامه پولس به می می‌بینیم که تمرکز اصلی نامه بر روی انجیل هست. قالاتیان انجیلی رو که پولوس اون را موعظه کرده بود تحریف کرده بود. یهودیی که توسط پولس مسیحی شده بود انجیلی رو که پولس می میکرد تحریف کرده بود. در باب اول پولس بر روی انجیل مطلق تمرکز میکنه. در باب دوم انجیل وارونه را معرفی میکنه. در باب سوم پولس انجیل در معرض دید رو بررسی میکنه و در باب چهارم او انجیل تمثیلی رو به ما نشون میده در این حال همونطور که وارد باب پنجم و ششم میشیم ما انجیل درو شده را هم داریم استعاره ای که پولس به کار برده همون کاشتن و درو کردنه پولس همون چیزی رو میگه که یوحنا در رساله خودشون رو بیان کرده یوحنا گفته میوه پارسایی ثمره چیزیه که کاشته شده به عبارتی زندگی درست یا پارسایی از چیزهایی که ما در باغچه زندگیمون کاشتیم حاصل میشه اگه فرزن زندگی ما مثل باغچه باشه ما میتونیم دانه های درستی توی باغچه زندگی خودمون بکاریم یا اینکه دانه های بدی بکاریم پولس میگه که در باخچه زندگی شما دو پتانسیل یا دو نیرو وجود داره شما میتونید کارها و خواهش جسم رو داشته باشید و یا اینکه میبه های روح رو به بار بیاریید وقتی که دانه‌های روح در باغچه زندگی شما کاشته شده، ثمره اون طبق غلاطیان باب 5:22 سمرات روح القدس نامیده میشه. حالا اجازه بدید تا من قلب نامه پولس به غلاطیان رو برای شما تفسیر کنم. این قسمت از آیه 16 باب 5 شروع میشه. من به شما توصیه کنم که از دستورالعمل روح القدس استفاده کنید. او به شما خواهد گفت که کجا برید و چی کار کنید. اینطوری شما همیشه کاری رو که طبیعت نفسانی شما میخواد انجام بده انجام نمیدید برای اینکه طبیعت ما همیشه مایل که کارهای نفسانی انجام بده که دقیقا با کارهای روح القدس در تضاد ده همچنین چیزهای خوبی که ما اونها رو به واسطه روح میخواهیم در تضاد با امیال جسمانی ماست این دو نیرو که در درون ما هستند به طور مداوم با هم در جنگن و سعی میکنند تا علیه همدیگه پیروز بشن. و ما رو تحت کنترل خودشون در بیارن و کارهای ما هم از تأثیرات اونها خالی نیست وقتی شما توسط روح القدس هدایت میشید، دیگه نیازی ندارید تا از شریعت یهودی فرمان ببرید اما وقتی که شما به دنبال امیال نفسانی خودتون باشید زندگی شما نتایج شیطانی به همراه داره افکار اشتباه، اشتیاق برای لذتهای شهبانی، پرستی، اعتقاد به وجود ارواح و بازگشت ارواح به جهان مادی. نفرت و جنگ و حسد و خشم و خودخواهی، شکایت و انتقادهای بیجا این احساس که همه اشتباه فکر می‌کنند، به جز کسانی که در گروه شما هستند. اما وقتی که روح القدس زندگی شما را کنترل می‌کند، ثمراتی که در ما به وجود میاره اینهاست: محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری و اینها هیچ تضادی با شریعت یهود ندارند. کسانی که خودشون رو متعلق به مسیح میدونن، امیال جسمانی خودشون رو بر روی صلیب مسیح میبرند و اونها رو مصلوب کنن. حالا اگه ما با قدرت روح القدس زندگی میکنیم، به روح القدس اجازه میدیم که کنترل زندگی ما رو به دست خودش بگیره و خودش زندگی ما رو هدایت کنه. این قسمت العاده ای از نوشته های پولس که من بهش خیلی علاقه دارم. من بیشتر از بقیه قسمت که در مورد مقایسه کردن خواسته های جسم و ثمرات روح القدس نوشته شده این قسمت رو دوست دارم پولس ضمن ادامه استدلال خودش در باب ششم به ما میگه زمانی که شما واقعا عیسی مسیح و انجیل مطلق او رو میبینید عیسی مسیح و انجیل مطلق او رو, رو روی صلیب ملاقات میکنید پولس در باب ششم از غلاطیان به ما میگه که وقتی او عیسی مسیح رو, رو روی صلیب ملاقات کرد دنیا برایش مصلوب شد او میگه و اما من خدا نکند که به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح به بالام که به وسیله آن دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا پولس در قسمت‌های پایانی باب پنجم و ششم به ما میگه وقتی ما انجیل عیسی مسیح رو درک میکنیم که مسیح رو در پای صلیبش ملاقات کنیم ما این دو قابلیت رو داریم حتی اگر ایماندار باشیم و حتی اگر شخص روحانی باشیم و روح القدس رو دریافت کرده باشیم ما میتونیم دانه های خواسته های نفسانی خودمون رو در باختی زندگیمون بکاریم و انحراف و فساد اونها رو برداشت کنیم یا اینکه میتونیم دانه ثمرات سمرات روح القدس رو بکاریم و خلقت تازه رو درو کنیم پولس در قسمت پایانی بیانیه خودش در باب ششم میگه که خطن مسئله مهمی نیست مسئله خلقت تازه هست آیا شما خلقت تازه‌ای در ایسای مسیح هستید؟ پولس تبدیل شدن یا تولد تازه رو این طور بیان می کنه. هر کسی که در مسیحه خلقت تازه‌ای این چیزیه که مهمه پولوس به اون یهودیانی که تلاش می‌کردن گلاطیان رو ترغیب کنن که احکام اونها رو حفظ کنن و خطنه بشن تا نجات رو دریافت کنند کنن این طور میگه این قسمت از گلاطیان باب 5 که وارد باب 6 میشه خیلی شبیه بخشی از رومیان باب 7 و 8 جایی که پولس در مورد تلاش و تقلای انسان درونی با ما صحبت میکنه در باب هفتم از نامه خودش به رومیان پولس نوشته بود که پس به این قاعده کلی پی میبرم که هر وقت میخواهم کاری نیکو انجام دهم فقط شرارت از من سر میزنم. پولس اینجا به ما چیزی رو میگه که دقیقاً اون رو در نامه خودش به رومیان گفته بود جایی که ما به اونها بابهای تقدیس شدگی میگیم که به ما نشون میده چطور عیسی مسیح رو پیروی کنیم تمام این قسمتها بر این متمرکز هستند شما میتونید دانه های درستی رو در باغچه زندگیتون بکارید و چیزی رو درو کنید که حیات ابدی نامیده میشه حیات ابدی در واقع کیفیت زندگی شما در این بود هست و بعد از اون در بعد زندگی ابدی چون شما دانه های درست رو در باغچه زندگیتون کاشتید اینها دلیل نوشته شدن این باب هستند این باب ها خیلی واقع هستند اونها به ما میگن که وقتی که شما روح القدس رو دریافت کردید طبیعت بشری شما توسط خدا بی اثر میشه اما ریشکن نمیشه اون از شما جدا نمیشه شریر در شما حضور داره همونطور که پولس در رومیان باب هفت میگه اینجا هم در باب پنج قلاتیان میگه این دو طبیعت در درون شما علیه همدیگر دیگر می جنگن. ما نمیتونیم از فشار این جنگ خلاص بشیم چون در درون ما بخشی رو اشغال کردن این چیز که گفته میشه خیلی واقع گرایانه هست. به این منی که هر روز نبردی در انسان درونی ما وجود داره چند سال بعد از اینکه رئیس یک قبیله هندی ایمان آورد خادمی که به این شخص بشارت داده بود برای ملاقات او به هندوستان برمیگرده خادم از او میپرسه که در چه راهی قدم برمی‌داره رئیس قبیله میگه بستگی به سگ سفید و سگ سیاهی داره که در درون من با هم دیگه می جنگه. خادم می‌پرسه حالا کدومشون پیروز شدن رئیس قبیله میگه اونی که من بیشتر بهش قضا دادم حالا این یک تمثیل خوبیه پولس به ما میگه که انسان درونی ما دو طبیعت داره جسمانی و روحانی اونها با هم در جنگن چون با هم دیگه مخالفن این تضاد در انسان درونی همه شاگردان عیسی وجود داره آیات آشنای زیادی هست که برای بشارت موعظه میشه ولی در واقع زمینه آموزش برای ایمانداران رو هم به همراه داره در موعظه سر کوه عیسی در مورد راه تنگ و راه فراغ صحبت میکنه. خیلی ها از این استعاره برای بشارت استفاده میکنند. ما به گناهکارا میگیم شما در راهی هستید که به جهنم ختم میشه. شما باید وارد راه تنگ بشید تا به سوی بهشت برید. وقتی که ما موعظه سر کوه رو با هم بررسی میکردیم دیدیم که تمام تعلیماتی که به شاگردان داده شد به اونها نشون میداد که چگونه قسمتی از راه حل ایسای مسیح و قسمتی از جواب های عیسی مسیح به مشکلات این دنیا باشد عیسی به آنها گفت به عنوان شاگرد من شما میتونید فکر کنید که راه آسونیه که بخشی از راه حل من باشید شما میتونید وارد این راه فراخ بشید و از این راه فراخ پیروی کنید ولی اون که نمیتونید بخشی از راه حل من باشید این راه فراخ به جای خوبی ختم نمیشه این تعلیمی بود که به همه شاگردان داده شده بود اینجا قسمت بزرگ دیگه ای داریم که به افراد روحانی داده شده که معمولاً برای بشارت دادن به گناهکاران استفاده میشه این کلمات آشنا در آیات 7 و 8 دیده میشه فریب نخورید هیچ کس نمیتواند خدا را فریب دهد زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد مثلا اگر کسی در کشزار هوا و هوس خیش باز بکارد از آن خرمن مرگ را درو خواهد کرد و اگر در کشوار روح خدا بکارد از روح حیات جاودانی را درو خواهد کرد این گزینه‌ای ایه که افراد روحانی اون رو دارن پولس به قرنتیان گفته بود که طبیعت انسانی نمیتونه روح القدس رو دریافت کنه پس اون نمیتونه حقایق روحانی رو درک کنه یک سگ پارس میکنه چون که یک سگه یک گناهکار گناه میکنه چون او یک گناهکار و یک شخص غیر روحانی کار دیگه ای نمیتونه انجام بده اما شما شخص روحانی هستید. پولس میگه شما میتونید در روح القدس قدم بردارید یا در طبیعت جسمانی. این شما هستید که باید انتخاب کنید. وقتی که یک شخص روحانی در راه امیال جسمانیش قدم برمی داره، پولس میگه که او نفسانیه. شما نباید در جسم زندگی کنید و در راه امیال جسمانی قدم بردارید و کار جسمتون را انجام بدید. با این حال شما میتونید که انتخاب کنید چون شما با حق انتخاب خلق شدید. اولوس به ما میگه که ما ای که روحانی هستیم باید در روح زندگی کنیم و در راه او قدم برداریم. ما باید دانه های روحانی رو در زندگی خودمون بکاریم و ثمرات روح رو به بار بیاریم چون ما این پتانسیل رو داریم او در دوم قرنتیان از عبارتی استفاده میکنه که من و زندگی مسیحی منو به چالش میکشه این عبارت از سه کلمه تشکیل شده همیشه در پیروزی دکتر رابرت سی مک مؤسس دانشگاه بین المللی کلمبیا کتابی نوشته که عنوانش از همین سه کلمه ساده تشکیل شده. همیشه در پیروزی پسر او که رئیس انستیتوی زیبایی بود به من میگفت به عنوان بچه‌ای که در خانه رابرت سی بزرگ شده هیچ وقت ندیده که پدرش در پیروزی روحانی به سر نبره. ندیده که پدرش هیچ وقت عصبانی بشه. ندیده که هیچ وقت کنترلش را از دست بده. من ندیده که هیچ وقت اخم کنه و یا دپرس بشه. او همیشه در پیروزی بوده. دکتر رابرت سی مکویلکین در کتابش می‌نویسه انسان همیشه می‌تونه پیروز باشه. اما او میگه توسط فیض خدا او این تجربه را در زندگی خودش امکان پذیر کرده. من و همسرم پنج بچه بزرگ کردیم. من از اینکه بچه‌های من نمی‌تونن در مورد من چیزی رو بگن که پسر دکتر مکویلکین در مورد پدرش گفت خیلی ناراحتم. اونها خیلی بیشتر از یک بار منو در حالی دیدند که پیروزی روحانی رو از دست داده بودم من خیلی شرمسارم از اینکه این رو میگم من خیلی صادقانه و صراحتن میگم که من همیشه پیروز نبودم با این حال با تمام قلبم ایمان دارم که من میتونم و شما هم میتونید اگر این امر غیر ممکنی بود کتاب مقدس ما رو تشویق نمیکرد کرد که همیشه در پیروزی باشیم نکته تمام متنهای مربوط به تقدیس شدگی این دیگر نباید گناه بر بدنهای فانی شما حاکم باشد و شما را مطیع حواسهای خود سازد شما نباید گناه کنید این برای ایمانداران کسانی که روحانین خیلی طبیعیه که به صورت روحانی پیروز باشند وقتی که شما سقوط میکنید این دیگه عادی نیست به عنوان یه شخص روحانی برای شما غیرعادیه. من از یک کشاورز سنیدم که میگفت وقتی که شما یک گله خوک و گوسوند رو برای چرا به جایی میبرید که چاله‌های پر از گل زیادی در اون هست، اگر اونها داخل چاله‌ها ها بیفتند، گوسفندها فریاد میزنند چون از گل بدشون میاد. ولی خوک ها وقتی میفتند، فریادی میکشند که فریاد شادمانیه چون اونها گل رو دوست دارن. این دقیقا تفاوت بین انسان روحانی و انسان نفسانی رو نشون میده. خب شما میدونید که وقتی خوکی داخل گل میفته خوشحاله، اما این برای گوسفندان عادی نیست. وقتی پسر گم شده داخل آغول خوکا بود این برای او عادی نبود وقتی که او تصمیم میگیره که به خانه پدرش برگرده در واقع او به سوی خودش برمیگرده او با خودش گفت من به آغول خوکا تعلق ندارم چون من یک خوک نیستم من یک انسانم سمرات روح القدس همونطور که پولس اونها رو تشریح میکنه برای زندگی مسیحی کاملا عادیه خواسته های جسم و کار در راه جسم برای کسی که تولد تازه داره برای کسی که روحانیه عادی نیست. او نمیتونه مثل یه شخص جسمانی در راه جسم قدم برداره. همه ما قادریم که کارهای جسم رو انجام بدیم. اما اونها برای ما ایماندارانی که تولد تازه داریم عادی نیستن. من ایمان دارم که تمام کسانی که پیراه مسیح هستن باید با فیض خدا زندگی تقدیس شده ای داشته باشن. همونطور که ما کتاب مقدس رو با هم بررسی کنیم باید همیشه این کلمات پولس رسول رو به خاطر داشته باشیم. دیگر نباید گناه بر های فانی شما حاکم باشد و شما را مطیع حواس‌های خود سازد. ما به عنوان ایمانداران مثل ابراهیم می توانیم ایمان به خدا رو انتخاب کنیم و یا میتونیم تلاش کنیم تا با قدرت جسم کارها رو خودمون انجام بدیم. به خدا اعتماد کنید، نفس خودتون رو بکشید و برای او و قدرت او زندگی کنید. میخوام با این سوال شما رو به چالش بکشم. آیا اونطور که دلتون میخواد روحانی هستید؟ در حالی که پولوس این نامه رو به پایان میرسونه، به ما مقایسه خیلی شفاف بین کار و خواهش جسم و ثمرات روح القدس میده. چیزهایی که پولوس اونها رو ثمرات روح القدس میخونه. این ثمرات نه تا هستن. ستای اول ما رو تشویق میکنند که به درون نگاه کنیم. اونها محبت، شادی و آرامش هستند. چیزی که امروز ما اون رو به عنوان محبت میشناسیم، چیزی نیست که اینجا پولس در موردش صحبت میکنه. پولس در مورد محبت آگاپه صحبت میکنه که اون رو در اول قرنتیان تشریح کرده. به قول پولس وقتی که شما محبت آگاپه رو تجربه میکنید، شما گونه ای از محبت رو تجربه میکنید که از بین نمیره. چون اون محبت بدون قید و شرطه محبتی که پایدار چون الهام گرفته از کسی که در درون شماست وقتی که این محبت آگاپه وارد زندگی شما میشه این محبت از ثمرات روح القدس این محبت از شما سرچشمه نمیگیره بلکه از خدا سرچشمه میگیره به نظر من ما نمیتونیم محبتی مثل محبت آگاپه داشته باشیم تا زمانی که این واقعیت رو تصدیق کنیم که ما نمیتونیم این گونه محبت کنیم اما میتونه از طریق ما این محبت ابراز بشه همونطور که شما با دیگران در ارتباطید محبت آگاپه از طریق زندگی شما تجلی پیدا میکنه وقتی که محبت از زندگی شما به افراد دیگه منتقل میشه این شما نیستید که محبت میکنید این روح القدسه این ثمره روح القدس در شماست بعد پولس میگه شادی میوه این روح القدسه آیا شما تا به حال در مورد منشأ شادی کنجکاو شدید بعضی از مردم فکر میکنند که شادی یه دفعه از آسمون سرازیر میشه و فقط به مردم خاصی تعلق داره. اونها اشتباه میکنن. این چیزی نیست که کتاب مقدس تعلیم میده. کتاب مقدس تعلیم میده که دلایل یا شرطهایی هست که باعث شادی در زندگی های ما میشه. ما یکی از اونها رو قبلا بررسی کردیم. یعنی در بالاخونه ای که در انجیل یوحنا عیسی به شاگردان چیزهایی رو در مورد ثمر آوردن میگه، این میگه. این چیزها را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد درد اجتناب ناپذیره ولی بدبختی انتخابه. این حرف های تیم هانسله که تعلیم عیسی رو در مورد شادی خلاصه کرده. به قول عیسی وقتی که شما در موقعیت وحشتناکی هستید، در این شرایط شما میتونید شادی رو تجربه کنید. برای شما بدبختی انتخابه چون روح القدس میتونه به شما شادی بده. شادی سمره روح القدس و این گواه اینه که روح القدس در زندگی شما وجود داره شادی با خوشبختی خیلی فرق میکنه سالها پیش من مردی رو میشناختم که به عنوان دستیار شبان استخدام کلیسا شده بود او میخواست با شبانی کار کنه که باعث ایمان او شده بود او شبانش رو خیلی تحسین میکرد چون اون شبان اتیه تشویق داشت طولی نکشید که شبان به او گفت ما میخواهیم از تو در شهر دیگری استفاده کنیم چون ما کلاس کتاب مقدسی در اونجا داریم و میخواهیم یه فروشگاه جلو کلیسا باز کنیم این دستیار شبان جوان دوست نداشت که کار فروشگاه جلو کلیسا رو به عهده بگیره او خیلی آشفته شده بود اما یادش اومد که شبانش روزی به او آیه چهار از باب ششم غلاطیان رو داده بود جایی که میگفت اما هر کس عمل خود را امتحان بکند آنگاه فخر در خود به تنهایی خواهد داشت، نه در دیگری. این دستیار شبان جوان از این واقعیت شادی عظیمی رو دریافت کرد که او میتونه در کار خدمت به شبانش کمک کنه. او خیلی افتخار میکرد که حالا تبدیل به بخشی از این خدمت شده. با این حال شبان بهش گفت میخوام شادی این حقیقت رو دریافت کنی که خدا از تو استفاده میکنه. پس شبان دستیار جوانش رو به شهری چهل دورتر فرستاد. و این چگونگی آغاز خدمت پروفسور دیک وودوارد بود که بعدها نویسنده دانشکده کوچک کتاب مقدس شد. تا مدتها هیچ اتفاقی نیفتاد ولی خدا بالاخره فروشگاه جلو کلیسا رو برکت داد و شبان وودوارد شادی رو تجربه کرد. در نتیجه ثمر آوردن شادی عظیمی به وجود میاد. ثمر آوردن یکی از شرطهاییه که شادی به بار میاره. در این آیه پولس به ما میگه که اینجا نوعی از شادی وجود داره که سرچشمه اون از وجود روح القدس در قلب شماست. این دلیلیه که پولس میتونه برای فیلیپیان از شادی بنویسه. پولس رساله شادی خودش رو از داخل زندان نوشت. در اون نامه ای که از زندان نوشته شد، پولس بارها و بارها از شادی صحبت میکنه. فکر میکنید اگر شما در زندان بودید، مخصوصا در زندانی مثل زندان رومیان، اگر برای کسی نامه مینوشتید، آیا اون شخص می تونست بگه شما همیشه در مورد شادی صحبت می کنی؟ پولوس با شادی این نامه رو نوشت، چون شادی سمره روح و پولس پر از روح خدا بود. پس ما هم میتونیم مثل پولس پر باشیم، مهم نیست که در چه شرایطی هستیم. پولس نه تا از ثمرات روح رو برای ما لیس کرده، دو تای اول محبت و شادیان و ثمره بعدی که روح القدس به ما میده آرامشه وقتی که پولس نامه فیلیپیان رو می نویسه او میگه که برای این آرامش شرطی وجود داره اگه شما روح القدس رو داشته باشید میتونید حتی در شرایطی که داشتن آرامش طبیعی نیست آرامش داشته باشید پولس اینطور عنوان میکنه آرامش الهی که مافوق فهم بشر است دلها و افکار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد کرد آرامشی که فراتر از درک انسانه به قول پولس وقتی که شما این نوع آرامش رو داشته باشید مردم به شما نگاه کنند و میگن ما نمیدونیم این آرامش از کجا میاد اما شما میتونید به اونها بگید این آرامش برای شما قابل فهم نیست چون که این آرامش از روح القدس میاد من مردی رو می شناسم که وقتی 17 سالش بود در خلال جنگ جهانی دوم به اردوگاه اشوییتز برده شد او بعد از چهار سال از اونجا زنده بیرون اومد و وقتی که ها لحستان را آزاد کردن او هم آزاد شد او ایماندار نبود او یک یهودی بود و عیسی نجات دهنده او نبود از او در مورد تجربه در آشویتس پرسیدند که آیا ایمان او باعث شده که زنده بمونه؟ اما او گفت که هیچ ایمانی نداره او به وسیله عقل خودش زنده مونده و باز از او پرسیدند که اما کسان دیگری که با او بودند چی؟ اونها ایمان داشتند. آیا ایمان فرقی به حال اونها نمی کرد؟ مرد یهودی گفت کسانی هم که ایمان داشتند وقتی وارد و اردوگاه می میشدند ایمانشون زیاد دوام نمی آورد. من با این مرد یهودی مخالفم. من به کریتمبوم یک زن مسیحی هلندی که با پدرش تنها زندگی می کرد و در جنگ جهانی دوم به اسراهای جنگی یهودی کمک می کردند تا از دست نازیها فرار کنند. و افرادی مثل او فکر می کنم که اونها هم با ایمان در این تجربه قرار گرفتند و وقتی از اون تجربه بیرون آمدند ایمانشون باعث پیروزیشون شده بود و در ایمان قویتر شده بودند. اونها آرامش و شادی را داشتند که احساس خوشایندی برای دیگران نداشت. چون اونها از روح القدس پر شده بودند، اونها آرامشی داشتند که از فهم تمام مردم بالاتر بود. اونها آرامش و شادی داشتند که از طریق روح القدس به اونها رسیده بود اون آرامش یکی از ثمرات روح القدسه من شخصا آدم صبوری نیستم چون هیکل ریزه و چشمان قهوه‌ای دارم همه اینطور فرض می‌کنند که من صبورم اما ظاهر من گول زننده است مردم فکر می‌کنند که من صبر دارم ولی واقعا ندارم در جسم در طبیعت انسانی من که توسط خدا یسر شده من تمام چیزهایی رو که دیروز برا ارزش داشتن می‌خوام و دوست دارم به راه خودم برم اگه اردکی رو دیده باشید که در روی تالابی شنا میکنه و بی سر و صداست و به سرعت داره میره ممکنه خیلی آروم به نظر برسه اما در زیر آب اون اردک داره به سرعت تمام پا میزنه حالا شکیبایی من هم مثل همون اردکه اما من یاد گرفتم که صبر و شکیبایی از روح القدس میاد وقتی که با خدا در یک رابطه تنگاتنگ باشید یکی از نتایجش این صبری که بر شما حاکم میشه. این شکیبایی و صبر همون انتظاریه که ایمان به همراه داره. گفته میشه که مهربانی از کلمه قوم و یا خانواده میاد. تا وقتی که دخترهای من کارشون رو با گارسونی شروع کردن، من به انعام دادن زیاد توجه نمی کردم. اما وقتی من در جایی که دخترهام کار می کردن قضا به اونها انعام خوبی میدادم، چون پدرشون بودم. روزی وقتی که توی رستوران غذا میخوردم این موضوع به ذهنم رسید که من باید با تمام گارسون ها طوری برخورد کنم که با دخترای خودم برخورد می کنم. این معنی همون واژه مهربانیه. با دیگران رفتاری داشته باشید که با خانواده خودتون دارید. حالا هر وقت که غذا خورم با خودم فکر می کنم اگر این گارسون دختر یا پسر خود من بود چه مبلغی به وناام می دادم. این دقیقا همون رفتاریه که، ما باید با دیگران در هر زمانی داشته باشیم چون مهربانی میوه روح القدسه سومین میوه روح القدس همون چیزیه که ما باید در روابطمون با دیگران اون رو داشته باشیم و اون همون نیکوییه این نوعی از نیکویی کردنه که نشان این واقعیته که روح القدس درون ما زندگی میکنه عهد جدید در مورد عیسی میگه او همیشه به نیکی رفتار میکرد انجام کار خوب جایی نداره ولی کارهای خوب ما رو نجات نمیدن. جاموسلی میگه در هر جایی خوب باشید، با هر کسی که میتونید خوب باشید، در همه جا میتونید این کار انجام بدید، به عناوین مختلف میتونید این کار را انجام بدید، هر قدر که میتونید خوب باشید، به طور خلاصه همیشه کارهای خوب انجام بدید. مهربانی یکی از میوه‌های روحالقدسه. کسی که درونش روحالقدس وجود داره کارهای خوب بیشتری انجام میده نسبت به کس دیگهایی که درونش چیزهای دیگه ای هست وقتی شما به درون نگاه می‌کنید ثمره روح القدس محبت شادی و آرامشه وقتی که به اطراف نگاه می‌کنید ثمره روح القدس صبر مهربانی و نیکویی هست. وقتی که به بالا نگاه می‌کنیم ثمرات روح القدس وفاداری فروتنی و خیشتنداریه حالا بذارید تا به وفاداری بپردازیم به نظر من بهترین قابلیت قابل اعتماد بودنه این میتونه تعبیری از این سمره روح القدس باشه. این نوع از ایمان و یا وفاداری به عنوان سماری روح القدس برای من خیلی کار کرده. چون قبل از اینکه من ایمان بیارم، هیچ نظمی نداشتم. من واقعا واقعاً بار بودم. من شبانی رو میشناختم که مادرش سالهای سال مریض بود. اون موقع اون شبان بین ده تا چهارده سال داشت. و بعد که مادرش فوت کرد، پدرش سالهای سال تنها زندگی میکرد. اون پسر نوجوان حتی شبها به خونه نمی اومد. در اون سنین بچه ها معمولاً بی بندوبار و سرکش هستند. در آخرین سالهای نوجوانی خودش او خیلی یاقی شده بود. او به طور قطع هیچ نظمی در زندگی خودش نداشت. اما وقتی توبه کرد و ایمان آورد و روح القدس به زندگیش اومد، او نظمی رو توی زندگی خودش پیدا کرد و این نظم باعث شد که او قابل اطمینان بشه. این یکی دیگه از سمرات روح القدسه من نمیدونم چرا ولی فکر میکنم که همه ما یک رگ ظلم درون خودمون داریم این مخصوصا در افراد جوان خیلی بارزتره من همین رگ ظالم بودن رو داشتم چون من دوست داشتم که مردم و حتی حیوانات رو اذیت کنم همونطور که نتایج تبدیل شدن در زندگی من خودش رو نشون داد من این تجربه رو داشتم که برای اولین بار در زندگیم از حیوانات خوشم بیاد وقتی که من یه گربه کوچک رو می دیدم، برای مثال حس می کردم که چقدر این گربه کوچک رو دوست دارم؟ این به من ثابت کرد که روح القدس در زندگی من کار می کنه. ملایمتی که ما امروزه احساسش می کنیم، سمره روح القدسه. آخرین سمره روح القدس که پولوس اون رو بیان می کنه خیشتنداریه. مردی که نازم یک مدرسه بود قبل از اینکه بازنشسته بشه، به من چیزی گفت که من فکر می کنم بزرگترین بینشیه که در مورد رفتار انسانی هست. مخصوصا اگه شما صاحب بچه یا یک شبان هستید، این بینش خیلی به دردتون میخورد. او میگفت بعضی از مردم مثل چرخ میمونند. تا زمانی که اونها رو حل ندید کار نمیکنند. بعضی از مردم مثل تریلر میمونند. اونها باید چیزی رو بکشن. بعضی از مردم مثل بادبادکند. اگه شما اونها رو محکم نگه ندارین، تا جایی پرواز که دیگه پیداشون د بعضی از اونها مثل توپ میمونن. شما نمیدونید که با یه ضربه تا کجا میرن. بعضی از اونها مثل بالون میمونن. همیشه هوا دارن. شما نمیدونید که تا کجا بالا میرن. بعضی از اونها مثل لاستیک های صاف شده هستند همیشه باید یکی پنچریشون بگیره. با این حال بعضی از اونها مثل یک ساعت خوب هستند یک ساعت طلای خالص. همیشه جلو چشمند. و سر وقت کارشون رو انجام میدن قابل اطمینانن همیشه کار میکنن و به طور خلاصه سرشار از کارهای خوبن در باب پنجم کتاب غلاطیان پولس رسول میگه اگر شما توسط روح القدس پر شدید و کنترل میشید شما مثل یک ساعت خوب کار میکنید خیشتندار هستید در پایان نامه فوق العاده پولس به غلاطیان پولس چیزی رو به غلاطیان میگه که من فکر میکنم خیلی عمیقه او میگه فریب نخورید. هیچ کس نمیتواند خدا را فریب دهد زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد مثلا اگر کسی بزر در کشزار هوا و حبس خیش بکارد از آن خرمن مرگ را درو خواهد کرد و اگر در کشزار روح بکارد از روح حیات جاودانی را درو خواهد کرد از انجام کارهای نیکو خسته نشویم زیرا اگر دست از کار نکشیم در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم کرد پس تا آنجا که فرصت داریم به همه نیکی کنیم مخصوصا به کسانی که در ایمان با ما اعضای یک خانواده هستند ببینید من با دست خود با چه حروف درشتی برای شما می نویسم مقصود آنانی که شما را به ختنه مجبور کنند، این است که تظاهر کنند و مخصوصا آنها نمیخواهند به خاطر به مسیح جفا ببینند حتی آنانی که ختنه دارند شریعت را به جا نمی آورن آنها میخواهند خواهند که شما ختنه شوید تا به اطاعت شما در یک عمل جسمانی ببالند و اما من خدا نکند که به چیزی جز به خداوند ما عیسی مسیح ببالم که به وسیله آن دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا داشتن و یا نداشتن ختنه مهم نیست بلکه فقط خلقت تازه اهمیت دارد پولس اینجا چیزی رو میگه که توی رومیان باب دوازده آیه یک و دو هم گفته تمام کسانی که تجربه تبدیل شدن را دارند به عیسی مسیح تعهد دارند. در رومیان باب دوازده آیه یک وقتی پولس میگه بنابراین ای برادران با توجه به این رحمتهای الهی از شما درخواست میکنم بدنهای خود را به عنوان قربانی زنده و مقدس که پسندیده خداس او تقدیم کنید عبادت روحانی و معقول شما همین است او از کلماتی استفاده میکنه که معنیش تسلیم خدا شدن یا سمر دادن هست. در پایان این نامه پولس به گلاتیان و به من و شما میگه که باید تسلیم عیسی مسیح بر روی صلیبش باشیم و زندگی هامون رو وقف او کنیم. وقتی که شما دستاتون رو بالا میبرید و بدون قید و شر تسلیم عیسی مسیح میشید، جهان برای شما میمیره و شما هم برای جهان میمیرید. در قسمت پایانی این نامه پولس میگه زیرا تمایلات نفسانی برخلاف روح القدس و آرزوهای روح القدس برخلاف طبیعت است و این دو مخالف یکدیگرند به طوری که شما نمیتوانید آنچه را دلتان میخواهد انجام دهید. چیزی که او میگه اینه در بدن من زخمهایی وجود داره که تعهد من به عیسی مسیح رو نشون میده. این زخمها نشاندهنده این واقعیت هست که من ایسای مسیح رو بر روی صلیبش ملاقات کردم. من این تعهد به او رو در اون زمان به دست آوردم. در ایسای مسیح من خلقت تازه هستم. مهمترین چیزی که در زندگی جدید ما در ایسای مسیح وجود داره خطنه نیست بلکه خلقت تازه است. ایمانداران مسیح دو پتانسیل دارم. خلقت یا تباهی تفاوت بین این دو پتانسیل شگفتانگیز بر صلیب ایسای مسیح دیده میشه من با مسیح مصلوب شدم به طوری که دیگران که زندگی می کند من نیستم بلکه مسیح هست که در من زندگی می کند و در خصوص این زندگانی جسمانی که من اکنون دارم فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی می کنم اقرار به ایمان تفاوت بین خلقت و تباهی رو برای تولد تازه تعیین می کند. شاگردان عیسی با کنترل روح القدس زندگی میکنند با اطمینان میگویم که پولس رسول نمونه ای از یک شاگرده. نامه عظیم پولس به غلاطیان را مطالعه کنید و یاد بگیرید که چگونه توسط ایمان به پسر خدا در قدرت روح او زندگی کنید عزیزان ماهیت نامه پولس به گلاتیان اینه مهمی نیست که چی کار میکنید مهمینه که چی هستید در مسیح ما خلقت تازه ایم. ما کارهای خوب رو برای نجات پیدا کردن نمی کنیم. ما کارهای خوب رو انجام میدیم چون نجات پیدا کردیم. از شما ممنونم که امروز هم در کلاس دیگه با ما بودید و شاگرده کلام خدا بودید. سعی کنید ترتیبه بدید که در برنامه بعدی هم ما رو همراهی کنید. خواهش می که از دوستانتونم دعوت کنید تا با ما باشند. امیدوارم امروز وقتی گوش میدادید از حضور خدا برکت گرفته باشید از خدا میخوام شما رو به طور مخصوص برکت بده تا برنامه دیگر